بابر رسی ولی الله ساکی تهیه شده در مؤسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه مرکز هن‌آبینایان رودکی صفحه 3 یادداشت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 و ایجاد آینده‌ای بهتر برای این سرزمین نقشی شایسته و مفید ایفا کند. دفتر پنجوه‌شایی فرهنگی محمد حسن خوشنبیس. صفحه 5 فهرست مطالب. پیش ساخت صفحه 7 فصل یکم خاستگاه کیش زردشته. 1. پیامی از فراسوی تاریخ صفحه 12 دو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 س. ارتباط با پارزیان هند و روایات صفحه شست فصل چهارم دوره معاصر یک نسخه های خطی صفحه شست و پنج 2. ارتباط با هند و انک تیل دوپران صفحه هفتاد و یک 3. ارتباط با هندوستان و لقب جزیه صفحه هفتاد و پنج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 فرم است تغییر یافته است زرتشت را نخستین پیامبر الهی جهان می دانند را اصطلاحا به دین و پیرو به دین بهی می گویند. امروزه شمار زرتشتیان ایرانی مقیم ایران نزدیک به سی هزار نفر است و بیشتر در تهران زندگانی می کنند جز این در یزد کرمان، شیراز، اصفهان و احواز و نیز دیگر شهرهای ایران سپونت دارند همچنین زرتشتیان ایران از دیرباز به هند، هندوستان و پاکستان کنونی رفته بودند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 فقط بافته قدیمی برخی از روستاهای یزد را می تقریبا همانند دوران پیشین یافت که در آن زندگانی زرتشتیان جدا و مجزا بود است.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 به رقم این گونه آمیزش روابط در گروهی در میان زرتشتیان به همان شیوه جهان قدیم و به اصطلاح روستایی و قبیلهی حتی در ممالک دوردست امریکا و استرالیا باقی مانده است.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 اینگونه باورها و عقاید و آینهای دیرینه سال هم تحت تأثیر پیام آسمانی زرتوشت دیگرسان گشتند و هم آنکه در شکل نوین نخیش در نزد زرتشتیان امروزی دوام آوردند. یک، پیامی از فراسوی تاریخ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 برای آگاهی از نظریه های تازه مخالف با این برداشت به آثار جان کلنز رجوع شود واژه گاهان معادل سنتی گات ها یا گاساها است ادامه متن. آموزش های زرتشت در گاهان ساده و طبیعی است و اوستا گذشته از آن باورهای که هنی رانیز دربر میگیرد که مجموع آنها را در کیش زرتشتی می توان باز یافت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 داستان زندگی زرتشت تصویر زرتشت فرزانه در تار و پود اساتی رو داستان بافته شده و از افسانه آن سوی تر رفته است. من آن پیر فرزانه را رفته رفته است از افسانه آن سوی تر دوست دارم. امید. در عوستا گاهی چنان از او سخن می رود که گویا از چهره که هنی در حالی از قداستی دور است.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 در فروردین هشت بند 87، هشت ها ۱407، جند دو صفحه 78، پس از کیومرز فرو هر زر توشت ستوده می شود. انگامی که زر توشت زاده شد خندید. چون بهمن فرشته نیک منشی به او در رسید و منش نیک بخشنده رامش و شادی است. بهار ۷۶ صفحه 245.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 گاشت ها 1347 جلد دو، صفحه 79 30 ساله بود که در روز خرداد از ماه فروردین رساله روز خرداد ماه فروردین بندهای 24 و 25 به همپرسی هرمزد رسید و او را بهمن امشاسپند که خود اقل اول و نخستین پذیرنده دین است بر رسیه دست‌نویس میم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 دیو خشم به سرزمین خیونان به پیش ارجاس به خیونی نابکار تاخت که آن روزگار بزرگترین فرمانروایان ستمگر بود و او را به جنگ برانگیخت. در یادگار زر ایران شرح و جنگ دینی ایران با ارجاس با آمده است.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 او 29378 صفحه 378 و صفحه 381 به شهادت رسید. مشهور است که پیامبر تسبیح خود را بر خود افکند و در همان دم او را آتش زد و, کشت و این واقعی بود مقدر. بررسی دست‌نویسه میم او 29378 صفحه 300 و 301 این درگذشت در ماه دی روز خور واقع شد.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 در آوردن دین کرد سه معود آین زرتشتی یعنی هوشی در و هوشی در ما و سوشیانس به کمال خواهند رسانی آنچرا که زرتشت در آوردن دین کرد سه موعود آین زرتشتی یعنی هوشی در و هوشی در ما و سوشیانس به کمال خواهند رسانید. آموزگار تفضلی 1375 صفحه 112 روایت پحلوی بهار 1376 صفحات 278 و 288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 با توجه به آموزش روحانی زرتشت و مجادله با معاندانی که روحانیند انتظار می رود که آنچه به تازگی آورده بوده است در تضاد دو خلاف با باورهای سنتی کهانه جامعه باشد. در حقیقت باید پرسش را با دقت بیشتری و چونین مطرح کرد.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 به همه این دلایل است که درباره این قدیمی ترین و مقدس ترین گفتار و کلام در دین زرتشتی که ارزش و اهمیت آن از دیرباز باز نظیر شناخته شده است هر پژوهنده و صاحب نظری بر حسب حال گمانی دارد آن را گاهی فلسفی و اخلاقی و گاهی آینی و اساتیری میبینند و گاهی ارفانی، گاهی نیز فقط از بعد تاریخی مینگرندش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 دینکرد چاپ مدان جلد دو صفحه 922 سطرهای 12 و 13. خرد اصولا فطریست و از آن هرمزده است درست منشی ترجمه بووندگ منیشنی و آن خود برگردان سپندارمز عوستاییست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 درگاهان نیز همیشه همین شیوه معمول است و جای وسیعی را برای تفکر و اندیشه و بینش دینی و فلسفه اخلاق باز میگذارد. هرمزد حرمزد آفریدگار شش امشاسپند است و امشاسپندان یعنی بیمرگان مقدس این شش نماد اندیشه نیک امشاسپند بهمن بهترین راستی اردیبهشت بهشت شهریاری آرمانی و دلخواه یا ملکوت خداوند، شهریور، برب، فروتنی مقدس، یا درست منشی، امشاسپند سپندارمز، کمال خورداد، بیمرگی امردادند.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 این مفهوم که از آن به اختیار در برابر جبر تعبیر می شود باید در قالب اندیشه و گفتار و کردار یسن پنجاه و بند دو نمود یابد و در این قالب است که گزیداری میان نیک و بدی پدیدار می آید. یسن سی بندهای دو و سه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 همانند با دوران مادها نشانه هایی کار کاررفت نام ایزدان در نام اشخاص بودن مفهوم فرح که تدابم آن در نیز مچون پهلوی و فارسی و حتی به شکلی دیگر در زبان ایلامی و اکدی باز میابیم.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 از اسناد بارو و خزانه جمشید برمیآید که هخامنشیان نسبت به ادیان دیگر ملت ها با تساهل و رواداری رفتار می و حتی برای نیایش و ستایش هزینه برابر با مردم خودی با آنها پرداختند. همین گونه تساهل و حرمت به دیگر ادیان را در لوحه استوبانهی فرمان کوروش بزرگ عرفهی 1356 می توان دید.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 نظر عمومی پژوهندگان بر است که در سراسر سر دوران سلوکیان و پارتیان آین زرتشتی در سیر تحولی گام میزده است که سرانجام در زمان ساسانیان شکل و صورت رسمی به خود گرفت ایزیدور خاراکسی میگوید که در شهر آساک آنجا که اشک تاجگذاری کرد آتش جاویدان را نگاهداری میکردند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 زیرا با رسیدن هلنیسم آمیزشی از نامهای خدایان و باورهای یونانی و شرقی پدیدار میگردد از آن پس خدایان سامی که خدایان بابلی نیز در آن زمرهاند و خدایان ایرانی و یونانی همه با یک نام خوانده شدند اهورامزدا با بعل و میترا مهر با شمش و آناهیتا با ایشتر یا ننه برابر گشتند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 اینان به سوی ادغام شدن در قادری متعال پیش میرفتند که تصوری از خورشید در آن بود. کالج 1380 صفحات 90 تا 97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 تا 38 میلادی این کلمه را از سکه های خود برداشت از زمان بلاش اول حدود 51 تا 80 میلادی حروف آرامی در پشت سکه ها جای حروف یونانی شد کالج 1380 صفحات 65 و 66 به دین شمار اینان ملیت ایرانی را بیشتر گرامی می داشتند و شکل گیری کیش زرتشتی را به روال احد ساسانیان به همین زمان می توان بازگشت داد دو موقعن در فرهنگ فارسی معین، سرواجه های موق، موقان، موبد، هیربد و مجروس آمد است. این فرهنگ موق را فردی از قبیله موقان، موبد زرتشتی، زرتشتی به طور اعم، معنی کرده است. در زیل سرواجه موق یا موقان در بخش اعلام می آورد، موقان در اصل قبیله از قوم ماد بودند که مقام روحانیت منحسرن به آنان تعلق داشت. آنگاه که آین زرتوشت، بنوهی قرب و جنوب ایران، یعنی ماد و پارس مست شد، مقان پیشوایان دیانت جدید شدند در کتاب عبستان نام طبقه روحانی را به همان عنوان قدیمی که داشتند یعنی آترون می اما در عهد عشقانیان و ساسانیان معمولا این طایفه را مقان می فرهنگ فارسی همچنین موبد را روحانی زرتشتی و موبد موبدان را رئیس موبدان و دارای بزرگترین درجه موبدی و روحانیت در کیش زرتشتی خوانده است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 در صفحه سی و چهار تصویری از نقش برجسته ای از دوره اشخانیان درج شده است از کتیبه های این اقدامات میتوان پی برد کرتیر برای آتشکده‌ها ها و روحانیون آنها مقرراتی پدید آورد و انوالی وقف کرد، آتشکده‌ها ها برپا کرد و به تعقیب و آزار پیروان دیگر ادیان پرداخت. ویدنگر 1377، صفحات 379 تا 384 که در رأس آنها قتل ما نیست.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 درست بلندی از نام موبدان را می شود برشمرد که بسیاری از آنان پدیدآورندگان کتابند به ویژه در قرن سوم هجری یکی از مشهورترین آنان منوچهر پسر ربانجم یا گشنجم نام پدر منوچهر را به دو شکل می شود خواند در قرن سوم هجری رد یعنی پیشوای روحانی فارس و کرمان بود است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 با مداومت و ایمانی فراتر از قدرت امسانی به حفظ نوشته ها و نیز آین های دیرینه پرداختند اینان با نوشتن و سپس رو نویسی کردن کهن کتاب و آنگاه انتقال آنها به هندوستان برای بازماندن و بازخانی و زندگشتن این یادگارهای های و قرون راهی گشودند.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 قسمت اعظم این مهاجران ایساوی مذهب بودند و بنابراین دیانت مسیح در هر گوشه از ای ای ایران اندکی رواج یافت. مسیحیان همکیش دشمنان رومی ایران بودند و پیوسته بیمان می رفت که برزده ایران دست به توطعه و اقدام زنند. درباره آنان همواره قول شاپور دوم صادق بود که نوشت آنها در مملکت ساکنند و دوست دشمن ما قیصر هستند. کرستنسن 1370 صفحات 364 و 365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 آین زرتشتی در عهد ساسانیان کیش زرتشتی شنان که در عصر ساسانیان به دست مقان روحانی و در چونین کشاکشی از اختلاط عقاید و باورها شکل رفته بود اینک دوام آورده است سه و سه بخش سازنده متفاوت را در آن میتوان شناخت بخش و لایه نخستین و بنیادین آن آموزش های ساده و اخلاقی گاهانیست که پیام آسمانی زرتشت است دومین لایه و بخش از آن باز از که بازماند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 ولی این تجلی برای دادن یاوری و سود به جهانیان است بررسی دستنویس میم اوه 29 5 صفحه و ونه قطعه پنج صفح و هشت و هنگام نیایش برای او هوم آمیخته به شیر و برسم میآورند با زوهر و با سارود بهرامگشت بند پنج اما در بندهش وی فقط در دار ایزدان بندهش صفحه 112 و نماد پیروزی جهان خیر بر شر است. سپس در زند یعنی ترجمه و تفسیر عبستاب زبان پهلوی نام وی فقط به پیروزگر و پیروز برگردان شده است.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 خرداد سرور آبهای گیتیست و همکارانش تیر باد و فروردینند در گیتی گیاه خیش امرداد ام امشاسپند است و یارانش رشن و اشتاد و زامیادند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 آن اندیشه نیک را ذکر می کند یسن 48 بند دوازده در بندی داد که فقرستی بلند از دیوان در فرگرد یا بخش نوزدهم آن می در رأس دیوان آز جای دارد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 استاب کتاب اوستا و نیز متون پهلوی همواره مورد رجوع قرار می‌گیرند و حتی های مکتوب به فارسی زرتشتی آنها را پیوسته منظور میدارند. از همین آثار متأخر به خوبی برناید که سنت شفاهی بسا بیش از کتابت و نوشته نقشمند است و گرچه می دانیم که نوشته ها چه آسان بر باد رفتند نقش و ارزش آنچه آنچرا موبدان شفاهن در راهنمایی مردم و راهبری جامعه گفتند هرگز نمی شود انکار کرد در صفحه چهل ون تصویری از بنای مشهور به کعبه زرتشت در نقش رستم وجود دارد و همچنین در صفحه چهل تصویری از دخمه یا دادگاه برج خاموشان و فراز تپه ساختمان دامنه تپه برای اقامت زائران است به نام خیده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 ادبیات زرتشتی در قرن سوم هجری هیچ کتاب و نوشته مستقلی از قدیم درباره جامعه زرتشتی ایرانی در دوران اسلامی بر جای نمانده است. از خلال کتاب‌های گوناگون می‌شود اطلاعاتی پراکنده به دست آورد. همچنین کتاب‌های دینی بازمانده و نیز نسخه‌های خطی های مختصری در بردارند دارند که می شود آنها را باز یافت و درباره ارتباطی که با تاریخ جامعه زرتشتی دارند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 به گواهی خود متن و بنابر شواهد درونی آنها برخی از این کتابها در دوران پیش از اسلام نوشته شدهاند و اغلب آنها ن قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری هیر بدستان و نیرنگستان مادیان هزار دادستان که کتاب حقوقی دوران ساسانیست شایست ناشایست کتاب فقهی زنده فرگرد وندیداد و همچنین بخش اصلی ترجمه و تفسیر اوی از گروه نخواستین باید دانست در برخی از کتابها صراحتاً از اسلام یاد شده است مثل روایات امیدا شوهی شان و گزارش گمان چکن یا قصه‌ی کوتاه بهرام ورجاوند که شعر است از این میان های منوچهر تاریخ دویست و پنجاه گردی 881 میلادی دارد و دادستان دینی از همین نویسنده و برادرش زادسپرم نویسنده کتاب گزیده‌های های زادسپرم است. دینکرد نیز در همین اوان به نگارش در آمده است. تفضلی 1376 صفحات 128 تا 131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 باداوری از روی بنوشت دست نویس دال نود، مزدابور 1371، صفحات 336 و 337 و نسخه عوستایی کتابت فریدون مرزبان، کتابت در سال 976 یزدی، مزداپور 1381 میشود گفت که اولا تا قرن نهم هجری موبدی چون دستور هوشنگ سیابخش پهلوی را زیبا و روان و رسامی نوشته است سانیان در قرن دهم نه تنها نوشته پهلوی دستنویس با زبانی زنده و متداول گرچه متحول و تازه نوشته شده است بلکه پرنوشت های پهلوی کتاب با چندین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 از نیایش‌های روزانه که بگذریم این نوشته‌ها را به یک تعبیر موبدان برای موبدان به نگارش درآوردند و در زمینه آموزش‌های دینی و آیینی است فقط از خلال آنهاست که می‌توان گاهی شرایط اجتماعی و اقتصادی و وقایع را استنباط کرد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 با ورود کارآمدن چاهرییان د25 تا 259 و و قمری دولت مسلمانی در ایران پا گرفت که ضمن آنکه تلیعه استقلال ایران بود خیال تجدید دولت ساسانی و احیای آیین زرتشتی در سر نداشت زرین کوب 1330 صفحه 299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 منبعت پیشوای مانویان حاضر گشتند. اخباری گوناگون از مناظره‌های مزبور در دست است. زرین کوب 1330 صفحات 328 تا 330 در کتاب کوچک پهلوی به نام گجستک ابالیش و نیز در رساله علمای اسلام که به زبان فارسی است این قبیل مناظره ها دیده می شود. حتی در دوران ناصر الدین شاه باغبان زرتشتی او به نام نوشیروان بهمرد نوش درباره رفع اتهام خورشیدپرستی به دینان با شخص شاه گفتگو کرده است. نقل از قول شفاهی خانم پریدخت دختر مرادپور تاریخ سیستان میگوید که در حدود سال 651 میلادی پانزده سال پس از فتح ایران، هنگام آمدن عرب به آن سردار محلی سیستان و موبدان موبد آن با فرمانده عرب ربیع ابن زید قرارداد صلح بست و پرداخت خراج و جزیه را متقبل شد. در پی پهبرجو شدن چیرگی تازیان این امر در سراسر سر ایران واقع گشت. بویس 1377 صفحات 234 تا 238 از آن پس کوشیدند تا آتشکدرها ها را خاموش کنند و یکی از نخستین آتشکده هایی که خاموش شد کاریان نزدیک دارابگرد فارس بود کلیفورد باسورس 1370 صفحه که و قرارداد های سالهی که توام با پرداخت خراج و جزیه سنگین بود کمک می کرد که زرتوشیان بتوانند آین و مراکز پرستش خود را حفظ نمایند چنان که مثلا آتشکده کرکویه تا چند قرن بعد در سیستان در احترام و امنیت برقرار بود بایس 1377 صفحه 236 کلیفورد باسورس 1370 صفحات 86 و 87.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 بایس 1377 صفحه 237 با سلطه عرب عموم ایرانیان دریافتند که مصلحت آنان در پذیرفتن دین تازه است در مقدمه بندهش به این نکته اشاره شده است بندهش 1369 صفحه 31 جز بهره گرفتن از مزایای حقوقی و تصاحب ارس کل خاندان یافتن مقام و مناسب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 در اواست سده ی سوم هجری هنوز آذربایجانسپ در شیز آذربایجان روشن بود. بویس 1377 صفحه 243. در قرن چهارم و پنجم هجری حاکم کازرون مردی زرتشتی بود به نام خورشید که از او به نام دیلم گبر یاد کردند.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 کیش زرتوشت ظاهرا بیش از همه در فارس مقاومت کرد. بویس 1377 صفحه 243 سپس با آمدن مقال به ایران و آشوب و قوقای آن زرتوشتیان صدمه بیشتری خوردند. مقالان در قرن هفتم آتشکده کرکویه را در سیستان ویران کردند. بویس 1377 صفحه 244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 پس از دوران مغال زرتشتیان دیگر بناهای بلندی را پی نیافکندند و آتش‌های مقدس به درون اتاقک هایی هرچه محققر تر نقل شد. بایس با 1377 صفحه 244 نخستین گزارشی که مسافران و سیاحان اروپایی به غرب آوردند و خبر از بودن تنی چند از پیروان مذهب کوهن ایرانیان دادند مربوط به زرتشتیان یزد و آتشکده شریف‌آباد بود. در سال 1604 میلادی دیگر زرتشتیان ساکن شمال و شرق ایران یعنی خراسان و سیستان به کرمان نزد همکیشان خود پناهنده شدند. بویس 1377 صفحه 245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 خاندان بهبودی از همان موبدان اصفهانی‌اند که در تفت یزد سکونت گزیدند جمعی دیگر از زرتشتیان گوریزان از آن قتل عام اصفهان تا کرمان شتافتند و آنجا پناه بردند یادهایی پراکنده از در ساکن مناطق دیگر در دست است مانند نشانه هایی از وجود آنان در دهاتی نزدیک ابرقو یا در راه آن که شادروان شیرین خداداد، بهرام خسرویان آن را از قول پدر خود نقل می کرد که در سفر به آنها برخورده است اطلاع شفایی.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 در این حال هنگامی که گبران به سوی او تیر انداختند وی از خون آنان درگذشت و مقابله به مثل نکرد فردوسامرشیه صفحاتسی فتادنه و 380 در این حال در همان کتاب صفحه صدفت آمده است که در پی شایعه قتل شیخ به دست گبران هنوز شب نیامده بود که ده هزار مرد مسلمان از رستاق و شابور و کوهستان در رباط شیخ حاضر شدند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 شیخ ابو اسحاق که در سیرت او مستور است که 24 هزار کس از گبران و آتش پرستان و جهودان به دست او مسلمان شده بودند فردوس المرشدی صفحه 29 و فریاد میزد که دشمن آن گبر و جمله گبران منم فردوس المرشدی صفحه 120 خود نمونه درخشان اخلاق و رفتار نیکو بود فردوس المرشدی صفحات 107 تا 111 در واقع این را تکلیف خیش میدانست که دیگران را به کیش اسلام درآورد اما در هنگامی که ستمی بر کافران هم می‌رفت اعتراضی نداشت و میگفت الخیرو فی ما یغضی الله این سکوت که رضایی هم در آن هست و نیز مجازات‌های سبک برای سوء قصد به جان و مال و ناموس نامسلمانان هموار دست اوباش و عرازل را بر ضد آنان بازگذرده است و مردم مؤمن صادقانه چون این ظلمی را چندان سنگین نیافتند نمونه آن را در شعر سعدی بزرگ می که در کتاب های مدرسی هم آمد است ای کریمی که از خزانه قیب گبر و ترسا وظیفه خورداری دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری.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 کهی خمار کش مفلس شراب زده کی کرد که کرد اینکه تو کردی به زعف هممت و رعی زگنج خانه شده خیمه بر خراب زده حافظ نظیری از برای همین ایستار را در کتاب تنزالود رستم و تواریخ از قول کریم خان زند می خانیم 1348 صفحه 324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 شاه مردان 1363 صفحات 544 تا 548 همین مهربانی و حرمت را زرتشدیان در زندگانی عادی خود با مسلمانان ایرانی داشتند و در روابط روزانه همین تصاحل و دوستی نزدیک مشاهده می گردد دستی و فقر زرتشدیان که به رقم زحمت و کار سخت قرن گذشته با ایشان بوده است راستگویی و ایمان و وزیف شناسی آنها را نکاسته است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 به نظر می رسد که انگار مهاجرت به هندوستان از پیش در زمیر ایرانیان نقش بسته بود است. پژوهش درباره مهاجرت زرتشتیان ایران پس از اسلام نشان میدهد که زمان این مهاجرت ظاهرا در نیمه دوم سده هشتم میلادی باید باشد.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 چند خانواده بزرگ از موبدان هندوستان از آن جمله خاندان سانجانا نسب خود را به نریوسنگ میرسانند پورداوود 1926 صفحات 14 و 15 مجموعه ای به زبان فارسی زرتشتی در دست است که به نام روایات فارسی شهرت دارد پورداوود 1357 ویزپرد صفحه 162 دانشمند پارسی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 این رفت آمدها همچنان ادامه پیدا کرد چه به شکل سفر به ایران و هند و چه به شکل مهاجرت ایرانیان به هندوستان از جمله های مهاجر زرتشتی به هندوستان نیاکان مانکجی، لیمجی، هاتریا بودند که در اوایل زمان صفویه از ایران به هندوستان رفتند همچنین از سفر ملا از هندوستان به دربار کریم خان زند سخن رفت که حضور او در ملازمت کریم خان و پای اش در رسیدن شکایت زرتشتی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 قضیه چندان داغ است که نه تنها آن را در خود خانه ها و کتابخانه‌ها در ایران و هندوستان واقعا به چشم میشود دید بلکه حتی در موسسه شرقشناسی کاما در سال 1380 جلسه های سخنرانی از سوی سازمان ملل متحد برای دادن آموزش در این باره برگزار شده است در ایران هم اخبار دردباری مرتبا می‌رسد و البته فاجعه این است که این خبرها همیشه پس از وقوع حادثه به دست مسئولان میافتد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 نادر هستند کتابهایی چون نویس میم و بیسونا که گرچه منحصر به فقط بخشی از قطعه‌های آن باشد تحریری تازه از متون کهن است به خط و زبان پهلوی هایی چون روایات فارسی فقط به زبان فارسی نگارش یافته است و نه پهلوی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 هیربد هوشنگ سیاوخش شهریار بختآفرید شهریار میخواند و نام او وخین شاوندانش در روایات داراب هرمزیار آمده است با تاریخ 847 گیزد و همچنین از شاپور جاماسپ شهریار بختافرین شهریار بهرام نوشیر روان خبر داریم. این هر دو از کاتبان نوشته هایی هستند که به هندوستان فرستاده شده است. شاپور می نویسد که این را از دفتر رستم شهریار و شادروانانی دیگر رو نویسی کرده است. روایات داراب هرمزیار جلد دو صفحه سی و دو و نام دستور رستم شهریار در صفحه سی و همین کتاب آمده که احتمالا نام همین صاحب کتاب است. این گونه دقت به ویژه در آغاز نوشت دست نویس دال نوت دیده می شود که اصلا تعلیف هوشنگ سیاوخش است نکته مهم در این بند نوشت است که وی از چگونگی گردآوری های دیگر و بازنویسی آنها به دست می دهد. دستور هوشنگ سیاوخش از چندین نسخه کهنه برای نگارش و کتابت یسنا و زند آن با یاوری و راهنمایی ایزدان بهره گرفته بوده است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 همچنین نام موبدانی که در هندوستان به کار گردآوری این دستنویسها و بررسی آنها پرداختند فهرست بلندی را میسازد مانند ماننده تحمورس دینشاه انکلساریا که چندان غنی هم نبود ولی به گردآوری و خرید نسخه ها پرداخت. های ملکی وی با نشانه تیدی مشخص و اصل آنها اینک در کتابخانه کاما در بنبای محفوظ است. بزرگانی مانند شادربان استاد یحیی ماهیار نوابی در ایران به چاپ این نسخه های خطی علاقه می‌ورزیدند و از هر فرصتی برای دست دادن به اقدام سود می‌جستند. همه دعای خیر دستور هوشنگ سیاوخش و دستور شاپور جاماسپ و دیگر کاتبان بدرقه نام نیکشان باد. 2. ارتباط با هند و انگتیل دو پران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 موبد داراب را از صورت و موبد جاماس را از نبوساری و موبد دیگری را از بروچ انتخاب نمود و در تعلیم آنها همت گماشت و زند و پهلوی به ایشان بیامخت. شاه مردان 1363 صفحات 428 و 429 مبداره را از صورت و مبدجاماسپ را از نوساری و موبت دیگری را از بروج انتخاب نمود و در تعلیم آنها همت گماشت و زند و پهلوی به ایشان بیامخت شاه مردان 1363 صفحات 428 و 429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 انگتیل دوپران به محض بازگشت کتابهایی را که با خود آورده بود رجبنیا 1351 صفحات 14 تا 17 به کتاب سلطنتی تحویل داد رجبنیا 1351 صفحه 11 و سپس به کار تحقیق و مقال نویسی و ترجمه و ایراد خطابه پرداخت در آغاز از هر سوبه او حمله شد والتر او را ناسزا گفت و ویلیام جونز جوان انگلیسی در مقاله در نوامبر 1771 در روزنامه فرانسوی نوشت و انکتیل توهین کرد رجب نیا 1351 صفحه دوازده. ویلیام جونز همان کسی است که بعداً اصطلاح زبان‌های هند و اروپایی را وضع کرد و هنگامی که انجمن آسیای بنگال را بنیاد نهاد، انگتیل دوپرون به او تبریک گفت. انگلیسی‌ها مدعی بودند که انگتیل زمینه تحقیق و پژوهش در آین زرتشت را از ایشان رابوده است. یکی از استادان آکسفورد به نام توماس هاید که عربی و فارسی می‌دانست، بر اساس کتاب‌هایی که به این دو زبان بود، در 1700 میلادی کتابی درباره آین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 بقیه و صیف در حدود یک دهم، ده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 یکی از ایشان که خان صاحب امینی 1380 صفحه 212 بود که به خدمات مانک ادامه داد چهار مشارکت در خدمات فرهنگی و اجتماعی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 این اقدامات را نمایندگان بعدی انجامن اکابر پارسیان همچون کیخسروژی خانصاحب و اردشیرژی ریپورتر پی گرفتند با زیروبمهای چند کوشندگی در این راستا به بار نشست چنانکه در سی و پنج سال پس از مرگ مانکجی آماری در دست است که آن از 818 نفر زرتشتی ساکن تهران دویست نفر مرد با سباد و سی نفر بی سباد 54 زن با سباد و 116 زن بی سباد از پسران 165 نفر با سباد و 66 نفر بی و از دختران 89 نفر با سباد و 87 نفر بی بودند درصد زنان باسواد در اواخر دوران قاجاریه در اینجا قابل توجه هست. امینی 1380 صفحه دویست و ده. تا سال 1225 گردی برابر با 1235 خاشدی در یعزد 11 مدرسه زرتشتی باز شده بوده است. اشیدلی 1355 صفحه دویست هفتاد.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 پزشکان و پرستاران زرتشتی در خدمات پزشکی پیشگام بودند و در یزد، کرمان و تهران در دوران معاصر برخی از آنان سرشناس بودند و هستند. از جمله خدمات پزشکی بینام نام زرتشتیان را در دو مثال می دید. شادروان دکتر فریدون ورجاوند از آغاز کارخیش از دهه سوم قرن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 مورد دیگر خدمات بی و صدا و متوازعانه و کاملا ناشناخته شادروان دکتر خدامراد مراد مرادپور پزشک حازق و پژوهنده هوشمند و توانایی زرتشتی است در طرح برانداختن مالاریا در ایران وی با فروتنی و در سکوت محض انجام گرفته است و جز همکاران نزدیکش هیچکس از ابعاد مهم و حساس خدمات آن شادروان با خبر نیست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 سهم مهمی که زرتشتیان در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه در اقتصاد کشور داشتند به تجارتخانه و صرافی ارباب جمشید جمشیدیان یزد 1229 خورشیدی تهران 1311 خورشیدی باز می‌گردد امینی 1380 صفحات 91 تا 98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 در همین اوان تجارتخانه های زرتشتی معتبر دیگری هم در کشور فعالیت داشت. اینان با یکدیگر هم به و مشغول بودند. این تجارتخانه ها با یاری و شور و هیجان ایرانپرستی پارسیان هند در پی آن بودند که به تأسیس بانک ملی در ایران یاری کنند. شمیم 1342 صفحه 377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 آل جمشید مردی بسیار بخشنده و با تقوا بود. بر سر سفره هر روز صدها نفر روزی‌خوار داشت و از تهیه شام و نهار برای کارمندان و خریدن زمین برای ایشان دریغ ورزید. پزشکان مخصوص رایگان از تجارتخانهاش را مداوا می‌کردند و به کارهایی چون ساختن آبنبار در بین شهرها و دادن جهیزیه و خرج عروسی برای زرتشتیان می‌پرداختند.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 وی از همان آغاز ریاست کارپردازی مجلس را احراز کرد. دوست و بیگانه به او اعتماد داشتند و از این اعتماد برای پیشبرد جامعه زرتشتی کمک می‌گرفت. امینی 1380، صفحات 141 و 142. وی به عضویت انجمن آثار ملی درآمد و, در و در ساختن آرامگاه فردوسی و جشن هزاره او نقشی فعال داشت. های دولتی مثل ریاست انبار قله در سال‌های قحطی نان در تهران بر عهده او بود همچنین کتابخانه و چاپخانه مجلس را به راه انداخت امینی 1380 صفحه 143 جز فعالیت در تصویب قانون به نفع های مذهبی انجمن زرتشتیان تهران را تشکیل داد امینی 1380 صفحه 144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 دو نکته متمایز توجه کرد یکی چاپ کتاب و مطبوعات است و دیگری زبان و لباس زرتشتیان در دوران معاصر درباره کتاب و چاپان در جامعه زرتشتی باید به پیشینه اقدامات زرتشتیان در این باب در هندوستان توجه داشت البته نخست باید انتشار کتاب‌های زرتشتی را به چندین گروه بخش کرد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 چهارم کتاب هایی که در ایران درباره دین زرتشتی و حتی تاریخ ایران باستان و زبان های باستانی ایران انتشار میابد. پنجم کتاب های زرتشتی که پارسیان هندوستان به خط گجراتی انتشار می‌دهند. پانویس در هندوستان متن کتاب عوستا را هم به خط گجراتی در و نیایش های را با آن خط می‌خوانند. مثل ما که عوستا را به خط فارسی کرده‌ایم کرده ایم و ادامه متن.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 فهرستی از این نشریه ها رو می شود کرد که برخی از آنها هنوز به چاپ می رسند و انتشار برخی دیگر متوقف گشته است. ماننده محنامه زرتشتیان بیگمان طولانی ترین عمر این مطبوعات از آن مجله هوخت که از پروردین 1329 تا آبان 1363 در چاپخانه راستی به چاپ رسید.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 پس از وی کیخوسروجی خان صاحب که به جای مانکجی از سوی انجمن اکابر پارسیان مأمور کارهای ایرانیان زرتشتی شده بود کوشید تا مجددن سر و سروسامانی به انجامنها بدهد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 ارباب کیخسرو و شاهرخ پس از بازگشت از هندوستان به کرمان آن شهر را زنده کرد و خود به سمت منشیگری آن به خدمت پرداخت امینی 1380 صفحه 285 انجمن زرتشتیان تهران به همت اردشیر جی رپورتر و ارباب کیخسرو شاهرخ در جمادیال آخر 1325 قمری امینی 1380 صفحه 285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 در کنار آندبستان دخترانه ایرج را ساخته بودند و بعدن بر زمین های مدرسه ایرج به ویژه با عرباب دکتر اسفندیار یگانگی مجموعه جدید احداث شد. اشیدری شاهروخ 1355 صفحه 88 و 89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 این جدایی امید نوع شغل رسمی و دولتی را از آنان سلب میکرد و عملا مشاغلی چون مناسب سپاهی و کشوری خارج از دسترس زرتشتیان میماند از آنجا که بخش اصلی دستمزد و دستاورد کار خود را ناگزیر میبایست برای جزیه بدهند و نیز بیگاری سخت از آنان میکشیدند و حتی زنان حامل را به کشیدن دیوار وادار میکردند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 به گونه انسان در آغاز آفرینش مورد مشورت خداوند قرار گرفت تا بتواند دست به گزینش زند و آمدن به جهان مادی و گیتی را برگزیند در پاسخ باید گفت که در آین زرتشتی برای وجود آدمی به تن و چند گونه نیروی مینوی قائلند. تن میرنده است و با مرگ اجزای آن به طبیعت می میپیوندد جان که قوه نامیه تن آدمی است با مرگ تن برباد می روید. روان که مسئول اعمال آدمیست هموست که پس از مرگ تحمل پادفراه دوزخی می کند و یا به بهشت خداوند می رسد. فروهر یا فروشی جزئی ازلی و ابدی از وجود آدمی است و از پیشگاه هرمزد میآید و در پنج ماهگی جنین در زهدان مادر به وی میپیوندد و پس از مرگ نیالوده و پاک به حضور خداوند باز میگردد. بخش دیگری از وجود آدمی دین یعنی وجدان است فروهر بخش الهی وجود آدمی است و در ازل وجود داشته و هموست که طرف مشورت دادار هرمزد قرار گرفته و صورت مینوی و کلی همه آدمیان است روان بهشتیان با فروهر همراه است بنابراین همراهی است که زرتشتیان در آینهای مقدس به فروهر اشوان یعنی پرهیزگاران درود میفرستند زادن کودک واقعی جمند است که به مناسبت آن جشن می گرفتند و می گیرند در جشن سالیانه تولد که آن را در سنت سالگیری میگفتند آش مخصوص و سوگ درست میکردند و می پانویس. سوراگ، روغن جوشی یا نانیست که در روغن سرخ شده باشد ادامه متن کودک و نوجوان در سن نیمیان 7 تا 15 سالگی در آین رسمی کشتی یا کستی برمیان می بندد و صدره جامعه آینی سفید می پوشد و این جشن را صدره پوشی می نامند شایست ناشایست 1369 صفحات 71 تا 72 شش فصل چهارم مراسم ازدواج زرتشتیان نیز ویژگیهایی دارد که قابل بحث و بررسی بسیار است. برای ثبت ازدواج و طلاق زرتشتی، دفترهای رسمی ویژه در تهران و یزد و کرمان و اردکان یزد وجود دارد. زرتشتیان برای مرگ آدابی خاص دارند زیربنا و پشتوانه این آداب و رسوم به باورهای دیگری باز می گردد که اعتقادات مقدس زرتشتی است بنابراین عقاید روان تا سه شب پس از درگذشت بر بالین تن میماند در چهارمین بامداد به هنگام سرزدن آفتاب شمارش سواب و گناهان او بر سر پل چینود یا پل سرات انجام می گیرد. کاران به بهشت می روند و گناهکاران به دوزخ می در کتاب ارداوی رافنامه که پیش نمونه ایرانی کمدی الهی دانته است وصف این بهشت و دوزخ آمده است. در پایان زمان پس از گذشت هزارهای دوازدهگانه دوزخ از میان می رود و روانهای دوزخی نیز آزاد می شوند و جهان به بهشت بدل می گردد. بحار 1376، صفحات 275 تا 339. درباره اساطیر مربوط به آفرینش و فرجام جهان به اختصار اشاره شد. در اینجا به ویژه باید درباره مفهوم زمان و اهمیت آن در باورهای زرتشتی بنابر متون پهلوی سخن گفت. بهار 1376، صفحات 158 تا 161 و جزآن زمان یا زربان در این باورهاگاهی برتر از آفرینش هرمزد و اهریمن قرار میگیرد و جای بحث و گفتگوی بسیار را باز میگذارد. دوازده هزار عمر جهان است و در پایان سه هزاره آخرین که در زمان آینده جای دارد سه موعود زرتشتی یعنی هوشی در و هوشی در ماه و سوشیانس ظهور خواهند کرد و با آمدن سوشیانس رستاخیز صورت می بندد و مردگان تن خود را باز می آبند و این تن جاودانه می شود که آن را تن پسین می آنگاه فرش کرد می که بازگشت است به زمان بیکران و لایتناهی و پاکی ازلی آنچه به ویژه باید یاد گردد اوج گرفتن بدی و رنج و مسائب است در پایان هزارها. مردم نیک در آن دوران دستخوش ستم و رنج سخت خواهند شد و وصف این زمانه بد و بدزمانگی خود نوع ادبی خاصی را در زبان پهلوی میسازد که زنده بهمن یسن و جاماس‌نامه ها نمونه آن هستند اما باز هم در ادبیات پهلوی بارها و بارها تکرار می می‌شود آنها را ادبیات بدزمانگی نامید رفتار با جسد درگذشتگان را در آیین کهن ایرانی و زرتشتی قدیم نمی‌توان تدفین خواند از دیرباز از روزگار مادها تا پارتیان نویسندگان خارجی درباره آن سخن گفتند بنابر قول آنان ایرانیان جسد درگذشتگان را رها می‌کردند تا گرگ و سگ و پرنده آن را بخورد درباره این رسم بسیار گفتگو شده است و ما در کتاب اوستایی وندیداد و شرح و تفسیرهای آن به زبان پهلوی از بنیاد استدلالی آن با باخبر میشویم. آنان باور داشتند که جسد بسیار ناپاک است از آنجا که زمین یکی از عناصر چهارگانه نمی باید آلوده شود پس دفن کردن جسد گناه بزرگ است. آلایش جسد را نور خورشید از میان می این باید آن را در جایی نهاد که به اصطلاح خورشید نگرش و در معرض نور آفتاب باشد. شایست ناشایست 1369 صفحات 8 تا 42 فصل دوم صفحه 46 و 48 محل نهادن جسد مردگان را دخم یادادگاه می نامند و به زبانهای اروپایی برج خاموشان. دخمهگزاری جسد با وجود قبری مانند آرامگاه کوروش حخامنشی و یا حتی آرامگاه صخرهای مادها و شاهان حخامنشی در تزاد قرار میگیرد همچنین سنگ قبرهای چندی که با نوشته های پهلوی به خط پیبسته یعنی پهلوی کتابی مشخص شده است و اغلب به قرون اولیه اسلام باز میگردد هماهنگی ندارد گورهای مختلف از اصر باردیان و دیگر احصار در ایران یافت شده است. همه اینها و نیز اوصافی که در شاهنامه در که دخمه مرسوم روزگار میآید گواه بر بران است که ناودین و محف کردن جسد در ایران برخلاف مندرجات وندیداد نیز انجام می گرفته است. با وجود این همین شیوه دخمه گذاری وندیدادی جسد در متون با شرح و تفصیل کامل آمده است، همجانین شاردن سیاه فرانسوی نقل می کند که زرتشتیان همین رسم را در اسفحان روزگار صفویه هم برگزار می کردند. بایس 1377، صفحات 271 و 272 پانویس نابدین برگردان فارسی برای جزئه دوم است از نیست و نابودین یعنی نابود و محو نیست و ناپدید در زبان دری زرتشتی یعنی محو و نابود اجامه متن در هندوستان تا همین زمان دخم گذاری برقرار است مانک جی صاحب در یزد 1235 یزد گردی و کرمان و تهران چند دخمه ساخت نخواست دخمه تهران برچیده شد و سپس در کرمان حدود 1318 خورشیدی و یزد 1336 خورشیدی آرامگاه را به شیبه جدید ساختند تاریخ انتقال قطعی زمین آرامگاه زرتشتیان تهران پس از پرداخت مبلغ مورد توافق به ارباب کیخسرو شاهرخ 28 خرداد 1315 است وی آن را وقف جامعه زرتشتی کرده است با وجود این بر های آن به عنف شهرک الماسیه و مؤسسات دولتی احداث کردند و اجاره بسیار ناچیزی را که خودشان وضع کردند و در حکم هیچ است به زور پرداخت میکنند. دو زیارتگاه ها و پرستشکده ها سنت مرکزیت آتش نیایش کردن در ایران بازمانده همین رسم است از روزگار هندو اروپایی ها نظیر این رسم را در نزد دیگر اقوام هندو اروپایی و نیز در جاهای دیگر می شود مشاهده کرد در ایران این سنت دیرینه به صورت ساختن آتشکده و پرستش سوی و قبله بودن آتش در آمده. و پایدار مانده است، هنگام نیایش کردن رو به سوی روشنی خواه خورشید و ماه باشد و چراغ و خواه آتش می کنند و در آتشکده روی به سوی آتش نیایش می خانند. از آنجا که امارت آتشکده ها ساده است و نشان چندان متمایزی ندارد، بسیاری از بناهای باستانی را که از زیر خاک در میآیند می شود تعبیر به آتشکده کرد. در آتشکده ها و نیز در شب که آتش و چراغ افروخته است، همان روشنی و یا نور ماه در شب قبله نماز و به اصطلاح پرستش سوی زرتشدیان است و هنگام ستایش پروردگار به آن روی می کنند. در روز رو به سوی آفتاب نماز می‌خوانند در دوران قدیمیتر، هر خاندان و خانواده آتشی خاص داشته است و سپس هنگام رواج شهرنشینی های شهری و کشوری نیز پدید آمده است از روزگار ساسانیان از های شاهی خبر داریم که هنگام نشستن هر پادشاه بر تخت سلطنت افروخته میشد. فرای 1368 صفحه 336 همچنین سه آتشکده بزرگ که هر یک ویژه‌ی یکی از طبقات سگانه مردم در آن ایام بود، آزرگشسپ، آتش جنگیان و ارتشتاران، آزرفرمبغ، آتش روحانیان و آزربرزین مهر، آتش طبقه تولیدکنندگان و بازرگانان. این آتشکده‌ها همگی ویران شده است. آتش روشن آنها را به جاهای دیگر انتقال دادند و تداوم روشن بودن این آتشان را دوام جامعه زرتشتی تضمین کرده است اما ویرانه های آنها بر جای است مثلا آزرگشس در محبته باستانشناسی تخت سلیمان در آذربایجان جای داشته و ویرانه های آن هنوز باقی است آتشکده های روشن امروزی تداوم همان های دیرینه و باستانی است. در ایران نزدیک به 25 تا 30 آتشکده روشن فروزان است. در شهر یزد و شریف آباد اردکان، دهات یزد و شهر کرمان، اسفهان شیراز، تفته یزد و توابع آن هر یک یک یا چند آتشکده روشن وجود دارد. برخی از آنها مانند آتشکده شریف‌آباد دارای قدمتی است که تا روزگار ساسانیان میرسد. بایس 1372 هفت صفحات 244 و 245 برخی دیگر مننده آتشکده های تهران و اصفهان و شیراز را از همان آتش های از نو اخیراً بازفروزی کردند بازفروزی آتش در آتشکده های روشن بنابر قواعدی پیچیده و با همکاری چندین روحانی و موبد و طی تشریفاتی پرتفصیل و معین انجام میگیرد بررسی تاریخچه آتشکده ها در ایران و نیز در دیگر ممالک جهان مستلزم نگارش کتابی بزرگ است و بسیاری از محووته های باستان به آتشکده های دیرین سال باز میگردد. همچنین آداب روشن نگاه داشتن آتش جزئیات دقیق و شرحی دراز دارد و موبدان و گاه نیز کسانی از مردم غیر موبد و به اصطلاح عام که آتش بند خانده می شوند این وظیفه را تعهد می کنند. معلوم است که قفلت کردن در انجام دادن چنین تکلیفی میسر نیست و نظم و ترتیبی قاطع را برمیتابد. تا قرن اخیر آتش‌های مقدس را در اتاقک‌های هر چه محقرتر نهادند تا کمتر جلب توجه کند و از خطر تهاجم و نابودی بر کنار بماند بویس 1377 صفحات 242 تا 245 فقط در همین قرن بود که امارت های بلندی برای آتشگده های روشن کنونی ساخته شد. آتشگده یا به اصطلاح در مهر کرمان در 1013 یزدیدی بنیاد نهاده شد. مانکچی صاحب در 1238 آن را از نو ساخت و در 1293 مربدان آتش را به امارت تازه منتقل کردند. آدریان تهران و آتشکده روشن در تهران پارس چندان قدیمی نیستند. آتشکده‌های یزد هر یک شرح و تفصیلی ویژه دارند. مثلا شاه مردان 1336 یزدگردی صفحات دویست تا دویست شش. برخی از نیایشگاه‌ها دارای آتش همیشه سوز و همیشه روشن نیستند. در این ها آتش را هر بامداد روشن می‌کنند. مانند شاو در خیابان امیریه اشیدری 1355 صفحه 338 بنیاد 1333 قمری برابر با 1284 یزد گردی در سال 1329 خورشیدی در برخی دیگر هرگاه کسی به اصطلاح به پای پیر برود شم و چراغی در آنها میفروزند ماننده شاه اشتاد ایزد رحمت آباد حومه یزد ریایشگاه های نوع اخیر که اغلب پیر یا پیرون خوانده میشوند تعدادشان در یزد و کرمان بسیار است و صورتی سنتی دارند اغلب آنها به نام یکی از ایزدان است و در روزی که به نام همون ایزده است به آنها سری میزنند و بوی خوشی بر آتش میگذارند برخی از این پیرونها در خانه یا رهگذری جای دارند در دوروبر کرمان زیارتگاه بسیاری هست ساروشیان 1335 صفحات 204 تا 214 در گزد در محل قتل شادروان استاد ماستر خدا بخش دانشمند وارسته و شهید زیارتگاهی پدید آمده است شه مردان 1363 صفحه 616 از مهمترین نیایشگاه های امروزی نظرتشدیان ایران باید شش زیارتگاه یا پیرون یزد را نام برد. شه مردان 1336 یزدگردی صفحات 161 تا 168 پیران. پیر سبز یا پیر چکچکو یا چک چک در راه تبس نزدیک اردکان در هشت پرسنگی یزد. افشار 1348 صفحه 63. پیر هرشت در 15 کیلومتری اردکان، افشار 1348، صفحه 62. پیر نارکین نزدیک سانیاباد و تجنگ در جنوب یزد، ابشار 1348، صفحه 449. بانوی پارس نزدیک زرجو در فاصله 24 کیلومتری در جنوب شمس‌آباد اقدا، افشار 1348، صفحه 45. ستی پیر یا هستتبندان شه مردان 1336 صفحه 159 نزدیک مریم آباد یا مریاباد حومه شهر یزد نارستانه در چهار فرزنگی مشرق یزد در جاده قدیم یزد به مشهد به قصد انجیره. افشار 1348 صفحه 166 صاحبان این زیارتگاه ها را در زیارتنامه فرزندان و یا وابستگانی از دیرد شهریار گفتند که دشمن تقیبشان می و آنان را کوه یا زمین پناه داده و قیب کرده است مثل زیارتنامه بیبی بی شهر بانو در تهران جز ستی پیر که در سنت مادر دیگران خونده می شود پیرون همه دور از شهر و در کوه و بیابان قرار گرفتند این زیارتگاه ها گذشت از زیارتنامه دارای ساختمانهایی به نام خیلند. در بیشتر آنها خادمی زندگانی میکند که وظیفهش روشن نگاه داشتن چراغ داخل اتاق پیرون یا به اصطلاح پای پیر و رسیدگی به آن و پذیرایی از میهمانان و زائران است زمینه آنها موقوفه ی انجمن زرتشتیان به شمار میرود هر هریک از این زیارتگاهها و هر پیرون زمان خاصی برای زیارت دارد که به آن حج می گفتند. این زمان را شادروان که خسرو راستی یا خسرو بیانی در تقویم چاپخیش به صورت ثابت در آورد. در زمان حج به برای زیارت پیر سبز زرتشتیان در سراسر سر مملکت و حتی از اقصای جهان به سوی یزد سرازیر می شوند و در خیله ها به مدت پنج روز می مانند. این زیارتها با ساز و و رقص و پایکوبی و دیدار همگانی تو است. سابقا رفتن به زیارت و پیرون دشوار بود به ویژه برای زنان و فقط برخی از مردم موفق می که یکی دو بار به پابوس پیر بروند پیرون مراد می دهد می تلبد و امروز مرکز باورها و براوردگی حاجات بسیار است امروز پیر سبز یا چکچک چک از همه بیشتر ارادتمند دارد و علتان را شاید آره آبچکان و زیبای سبزه آن باید دانست که در دل کبیر خود نوعی معجزه است. از پیربانوی پارس در ای مورخ 996 یزدگردی مرابر با 1626 میلادی بایس 1377 صفحه 284 در روایات داراب هرمزیار یاد شده است. جلد دو صفحه 159. بهدین دین بهمن ابن اسفندیار که از هندوستان به ایران آمده بود به این زیارتگاه رفت نام این پیر به تقسیمات جغرافیای قدیمی این خطه باز می گردد که بنابر آن یزد جزء استان پارس و حد نهایی آن در شمال به شمار می‌رفته است این توجیه در شناخت معنای نام بانوی پارس می تواند کلیدی باشد در فهم نقش و جایگاه و چگونگی این زیارتگاه و دیگر پیرون همتای آن سے ها و سفره های مقدس با رجوع به متون پهلوی و اشاراتی در اوستا هم می شود تداوم نیایش های دینی را به نحوی تا جامعه زرتشتی معاصر دید و همان که تغییراتی را که در طی این زمان دراز در آن حادث شده است مشاهده کرد بنابر ماتون نیایش های انفرادی به ویژه هنگام خوردن تعام در روزگار گذشته تفصیل بیشتری داشته است در آن ماتون خواندن نیایش و خوردن خوراک در سکوت رسم بوده است و به اصطلا با گرفتن با جو برست تعام خوردند شایست ناشایست 1369 صفحات هشتاد و هشتاد و یک این رسم که شکلی متأخر از آن تا چندی پیش معمول بود دیگر باب نیست همچنین واژه استوفرید که به نظر کردن برای ایزدان تعبیر می شود فقط به شکل نظر کردن برای ایزد بهرام یا رفتن به نیایشگاه در روز بهرام هنوز معمول است و شکل سابق خود را که چندان هم روشن نیست از دست داده است هر زرتشتی می باید در شبان روز پنجگاه نماز بخواند پور داود 1310 خورد صد صفحات 148-152 نیایش هایی که روزانه خوانده می شود به نام نیایش های بایسته در سراغاز خورده عبستا می آید. در هر روز پنج بار کمربند دینی یعنی کشتی را بنابر قواعد آن می و باز میبندند بندند. 1310 خورد عوستا صفحات 58 تا 74. نهایش های پنجگانه پور دابود خورد عوستا صفحات 103 تا 106 و یه نیز همراه با عوستای بایست خانده می شود. تم های را در آین های نیایش جمعی نیز میسرایند نیایش هایی که به صورت جمعی برگزار می گردد بسیار است مهمترین و ترین آنها یکی گاههنوار است و دیگری نیایش برای درگذشتگان بخش دیگری از نیایش ها به موبدان اختصاص دارد که آنها را در درون آتشده ها و به اصطلاح های آتش می خانند. شرح تفصیلی آن و نیز نیایش هایی که به مناسبت جشن های گوناگون طلاابت می بخشی از آموزش های موبدان و هیربدان است و خاندن و شیبه خواندن آنها را باید بیاموزند تا اجازه برگزاری مراسم دینی و شرکت در آینهای جمعی رسمی را بیابند کازور موبدان در نیایش های جمعی ضروری است و این امر جزئی است از وظایف و تکالیف دینی آنها بخش بزرگ دیگری از نیایش های جمعی به نیایش برای درگذشتگان باز می گردد که تفصیل بسیار دارد در همه اینها موبت شرکت میوررزد و اوست که هر بار آفرینگان یعنی نیایش ویژه را میخواند. همچنین میهمانی و چیدن سفره برای نیایش و تهیه و تدارک خوردنی‌های خاص نیز در کار است. اخیرا گرایشی است که از تفصیل این مراسم کاسته شود و آداب آن با سادگی بیشتر برگزار گردد. امروز شرکت در صفره های مقدس و آیینی خیلی متداول شده است. بر این صفره ها گاهی روحانیون و متفکران با اخم و تخمین نگرند. این صفره ها عبارتند از سفره دختر شاه پریان، سفره بهمن امشاسپند، سفره بیبی شنبه و سفره نخود مشکل‌گشا. خلاف این آخری دوتای اولی اخیران رواج و رونقه بسیار یافته است و به نظر می رسد که جای نیایش قدیمی و نظری به نام استوفریده ایزدان شایست ناشایست 1369 صفحات 155 و 168 و 174 را گرفته باشد. مشخصه مهم این سفره ها نظر کردن است و نیت کردن به اینکه هرگاه حاجتی برآورده شود سفره را بکشند و یا برای ای که کشیده می شود پیشکش و ای ببرند. چهار جشن ها پروفسور مری بایس پژوهنده نامور کیش زرتشتی به تاریخ معاصر زرتشتیان می نویسد که شادی کردن تکلیف دلپذیر دینی این جماعت است، در کتیبه های شادی و دیعه خداوندی برای مردم به شما آمده است و در نوشته های نیز آمده است که او یعنی خداوند به یاری آسمان شادی را آفرید بدان روی برای او یعنی مردم شادی را فراز آفرید که اکنون که دوران آمیختگی خیر و شر است آفریدگان به شادی دریستند بهار 1376 صفحه چهل با همه ی و ستمی که زرتشتیان در طی قرون دراز تحمل کردند، همواره شکوه برگزاری تشریفات آینی را با خود داشتند. بویس 1377 صفحات 271 و 272 و در عین فقر به جشنها و آینهای سنتی کهن میپرداختند می پرداختند که خیرات و مبرات و شادی بنیان آنها بوده است. باید افزود که اینها را مایه برکت و خیر و روی آوردن اقبال نیک می دانستند عبارتی که معمولا در سرآغاز همه نوشته های کهان می آید آرزوی فال فروخ و مروای نیک است و در پایان به فرجام رسید با درود و فرخی و شادی و رامش در جشنهای زرتشتی بازتاب به این اندیشه کهانسال را می مشاهده کرد. این جشنها به مناسبتهای مختلف برگزار می است. فهرست و شرح بلند از آنها در آثار الباقیه عبوریحان بیرونی و تاریخ گردیزی آمده است. همچنین در متن پهلوی نیرنگستان از ترتیب و آداب جشنها نیز سخن می روید. همه این جشنها و آداب و آینها با همه جزئیات خود تا کنون باقی نمانده است ولی ترهی کلی از آنها بر جای است. جشنهای کنونی زرتشتیان را اصولا باید به دو دسته متمایز تقسیم کرد. یکی جشنهایی که صرفاً جنبه دینی دارند و دیگری جشنهای کشوری و ملی. ذکر این نکته ضروری است که واژه جشن که از ریشه یز به معنی ستودن و ستایش کردن ابستایی میآید، در اصل با تقدیس و نیایش نسبت داشته و اصلا به این اعتبار بر آینها و مراسم آینی اطلاق شده است. دیگر اینکه جشن‌های سالیانه سلسله و ترتیبی در زمان می آفرینند که هنوز هم زمان و گردش آن را حتی در جامعه مدرن زرتشتی قداست می‌بخشد و حیات اجتماعی را از صورت ناسوتی و نامقدس دنیای مدرن به در می‌آورد. در جامعه سنتی زرتشتی این جشن ها با زندگانی روزمره به شدت، سرشته و با آن عجین شده بوده است. نوع ارتباطات اجتماعی و روابط میان خانواده ها در یکی دو نسل پیش لازم می‌کرد که برگزاری این آین ها جزئی باشد از حوادث روزانه و عادی. بدین شمار بود که همراه و همپای کارهای کشاورزی در مزرعه و باغ تهیه دیدن و فراهم آوردن ابزارهای واجب برای مراسم آینی هم تکلیفی روزمره و عادی بود. در این جریان داد و ستدهای و تندی در تعاون و همیاری پیش می‌آمد که شکل زندگانی روزانه را مشخص می‌داشت. در طی آن نوعی خیرات و مبرات و اشتراک در خورد و خوراک هم مطرح میگشت که از ممیزات جامعه سنتی و روستایی زرتشتی است و غنی و فقیر در آن شریک و همکار و همراه می‌شدید. و نیز نمادهای رنگین و دلپذیر حیاتی و زنده را این شیوه زندگانی هنوز در برخی از روستاهای یزد به خوبی مشاهده می گردد و آثاری از آن در تهران نیز بر جای مانده است لازم به یادآوری است که امروزه برای برگزاری برخی از این آینها به ویژه گاهنبارها و نیز البته مراسم دینی درگذشتگان سفر میان شهرها و حتی کشورهای مختلف مرسوم است رقم بزرگ از روزهای سال را بنابرا تقویم زرتشتی باید جشن گرفت از آنجا که روزهای ماه نام سی ایزد یا فرشته را بر خود دارند و در هر ماه یک بار نام روز و نام ماه با هم انتباق میابد دوازده روز در سال را جشنهای تقویمی اشغال میکند امروزه با محاسبه این دوازده جشن به مناسبت انتباق نام روز و نام ماه و شش بار و سپس نوروز و نوروز بزرگ. روز ششم سال و نیز صده و چله یا شب و چهارشنبه سوری شماره این جشن ها به 23 می رسد اما این شمار با رجوب به کتاب‌های گذشتگان مانند آثار الباقیه و تاریخ گردیزی و اطلاعی که درباره جشن‌های ایرانی به دست می‌دهند تغییر می‌کند در صفحه 114 تصویری از نقش برجسته فروهر، قسمتی از نقش برجسته روی صخره بیستون، حک شده توسط داروش اول هخامنشی، سال 520 تا 519 قبل از میلاد درج شده است. صفحه 115 سخن پایانی بدین شما جامعه کوچک زرتشتی در دوران حاضر یادگار آیین کهن نیاکان در این سرزمین است اقلیت دینی زرتشتی از یک سوی های کهنی را برگزار می‌کند که ریشه‌های آن به زمانی می‌رسد که نیاکان ما با هندوان و حتی اروپاییان کیشه واحدی داشتند از سوی دیگر امروز متخصصان و فعالانی دارد که در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی یاور جامعه معاصر ایرانی‌اند اینان با عشقی راستین که به میهن و ایران عزیز و هموطنان خیش دارند در بسیاری از امور فرهنگی و اجتماعی پیشگام بودند و اینک نیز میکوشند تا نقش موثر و سودمندی ایفا کنند. در شرایط مناسب امروزی که برخی دوشواری های قدیم رفت شده است احترام متقابل و ارتباطی نیکو میان زرتشتیان و ایرانیان دیگر برقرار است زرتشتیان که در مبارزات مشروطیت، نهزت ملی و جنگ تحمیلی دوشادوش دیگر هموطنان به نبرد پرداختند در سازندگی و فعالیت اجتماعی نیز کوشش کردند امروز اختلافی چندان در ظاهر و جامعه و زبان و شغل میان این اقلیت مذهبی و دیگر ایرانیان به چشم نمی خورد و برابری و برادری میان همگان برقرار است. آوازه نیکنامی زرتشتیان معید اخلاق نیکویی است که به ارث به ایشان رسیده است و بر این بنیاد همواره احترامی ویژه در نظر همه ایرانیان داشتند و دارند می شود هر چیزی را که از ایران باستان بازمانده است به آنان نسبت داد اما ایرانیان کما بیش همواره با اشتیاق چونان نیاکان زنده خود می شمارندشان و تاریخ باستانی را در وجود آنان مجسم و بازمانده می آین های کهنی که زرتشتیان زنده نگاه داشتند افزون بر شیبه‌های پسندیده چشماندازی روشن از حیاتی شکوفا و سرشار از قدرت و شادی را باز می‌نماید که متعلق به فرهنگی نیرومند و قابل دوام است و سوتودن بازتاب و اسارهٔ این بینش و ایستار را در گرفتن جشن در نظم زرتشتیان میشود دید جشنهای زرتشتی در سر و سر سال ادامه دارد و با آن اسطوره و آین و نمادهای رنگین و پرسود به زندگانی پیوند میخورد رنگ کهنیک و طبیعتگرای این جشن‌ها بازمانده‌ی قدمت اصیل و سرزنده ای است که طبیعت جاندار را به درون جامعه مدرن شهری می‌کشاند و آشتی و ارتباطی در آن هست که هموارت هستند و رنگ کهنیک و طبیعتگرای این جشن‌ها بازمانده‌ی قدمت اصیل و سرزنده است که طبیعت جاندار را به درون جامعه مدرن شهری می‌کشاند و آشتی و ارتباطی در آن هست که هموار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 چاپ عکسی از روی نسخه شماره یکه تهمورس دینشا 1348. به کوشش با پیشگفتار ماهیار نوابی تهران بنیاد فرهنگ ایران شماره هشتاد زبان شناسی زبانشناسی ایرانی شماره چهار. بویس مری، 1375 تاریخ کیش زرتشت جلد دوم هخامنشیان ترجمه همایون سنعتی زاده تهران توس.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 در یکی قطر باران جشن نامه عباس زریاب خویی به کوشش احمد تفضلی صفحات 721 تا 737 تهران تفضلی احمد 1376 تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام به کوشش جاله آموزگار تهران سخن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 تفسیر و ترجمه ابراهیم پور داوود از سلسله انتشارات انجمن زرتشتیان بمبئی و انجمن ایران لیگ بمبئی از نفقه پشوتان مارکر داندامایوف میم الف محمد علی 1373 ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی ترجمه روحی ارباب تهران انتشارات علمی و فرهنگی نیا مسعود 1351 زندگی نامه انکتیل دوپران یاد نامه انکتیل دوپران نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان سال 11 شماره دو اسفند 1351 سفات سه تا هجده رستم و تواریخ 1348 محمد هاشم آسف رستم حکما الحکما به کوشش محمد مشیری تهران چاپ تابان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 سروشیان جمشید 1335 فرهنگ بهدینان به کوشش منوچهر ستوده با مقدمه ابراهیم پورداود تهران فرهنگ ایران زمین نشریه شماره 3 شاهروخ کیخسرو 1355 برابر با 2535 یادداشت‌های داشت های کیخسرو شاهروخ به کوشش جهانگیر اشیدری تهران چاپ پرچم شاهنامه فردوسی 13238 هجری دردی برابر با 1331 قمری به کوشش آموزنده ابن شیرمرد بن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 پایان کتاب زرتشتیان از ایران چه می‌دانم مؤلف کتایون مزداپور